خیلی ماچکرم از وقتی که به من داده شد من فکر کنم تنها کسی باشم توی این جمع که به تحصیلی من موزه است و میخوام توی پونزده ده در زمانی که دارم دیدگاه شما رو نسبت به یک پدیده و یک محسسه اشتماعی چند برم به موزه تغییر برم به موزه از نظر لغوی از اونجای شروع میشه که در اساتیر یونان خدای خدایان زوس با ممنوزیته یعنی خ و محصول این ازدواج نوع الهه هست به نام میوزها میوزها نوع الهه هستند که کارشون کاستاری از هنرهاست بنابراین معابدی درست میشه که در اونها آثار هنری مثل مجسمه ها گرد میشه و میوزها رو در اون معبد مورد پرستش قرار میدن که محلیه یه برای کاستاش هنر و در واقع اسطوریه که نشون میده یونانی ها متقدن انسان در زمان تولدش همه چیز رو میدونه جنین به همه چیز آگاهه و درد ناشی از ظایمان باعث میشه که همه چیز رو فراموش بنابا کنه بناباییش از هفتاد سال عمر میکنه تا اون چیزهایی به که فراموش کرده به یاد بیاره این دیدگاه یونان و فلسفه یونان در رابطه با هستیست اون معبدی که در اونجا میوزها از هنرها پاسداشت میکنن نامش میوزیم هست که اسم مکانه و نغمه هایی که میوزها با همدیگه میخونن تا از این آثار هنری محافظت بکنن نامش موزیک هست که امروزه به واجه به صورت عربی تحت عنوان موزیقی و در ایران به عنوان موزیقی برود و تزینات این ها، که معمولا در کنار قرار دادن سنگک های رنگی بوده به نام موزهیک امروز میشناسید پسا میگم که این واژه از کجا اصلا اومده خب، اما امروز موزه یه چیز دیگه است امزار تغییر کرده است سعی میکنم توی 10 تقیه خدمتون است کنم که موزهها ها اصل مقطه ابتداییشون که پیدا میشند، تا امروز چه تغییرگیری کردن و ما امروز به چی میگیم موزه ؟ و در پایان الزم صحبت هم رو به این سمتی دارمم که ما چقدر مصومول میزه رو هنوز نتونستیم پیاده بکنیم. به همچه راهکارهایی داریم برای پیاده کردن موزه به معنای واقعیش اولین بار سال 1683 اواخر قرن 17 هم ای به وجود ما که بهش میگن نیوزیم در انگلیس، در تاریخ انگلیس، در تاریخ موزه اینطور منشته شده یک شخصیه که جهان رو میگرده نموناهای گیادی زیادی رو جمع میکنه به نام تریدسکنس با پسرش به در کاخ سلطنتی انگلیس که وقتی کمی میره تمام این مجموعه یک تجربه بازی به اسم الیاس اشمول میخره و الیاس اشمول همین حالا رو می‌فروشه به دانشگاه آکسفورد. منو دانشگاه آکسفورد در این سال این موزه رو به نام الیاسمولیا موزه اشمولیا دوما اولین موزه راه زیره می‌کنه و در واقع نسل اول موزه‌ها به وجود میاد. موزه‌هایی که همون تصویری رو ارائه می‌دن که الان شما ها تو ذهنتون هست. سالن‌های فراوان با کلی آثار و مناهای پلیمی و عتیقه که در اونجا میتونید شما آثار قدیمی رو ببینید و بعدتون تعجب آورید که چقدر اینها جالبه چجوری اینها رو درست کردن در دوره‌های قدیمی بدون وجود امکانات اینها چطور تونستن همچین چه رو تهیه یک هم یه مثال آراپته شده تهرانی بزنن مثل این میمونه که مثلا در اول خیوب سیتی یه موزهی راه نیفته به اسم موزه ملی مثلا 300 ساز در اصفهان خب در و هر من 17 هم, هم و 19 اتفاقی که در جهان موزه ها بخورده اینه که تعداد موزه ها زیاد شد یعنی بله فاصله بعد از بیلتانی کشورهای دیگه مثلا امریکا در از آن از آن اینجا و غیره شروع میکنن به موزه زدن بنابراین توصیلی یک کمی موزه ها مهمترین مدیداد این سال هاست خب فرض فالی تعداد یک موزه در خیابونه سیه تی و تبدیل بشه مثلا به پنجتا موزه یه دروایی بین موزهها ها شکل میگیره برای جذب مخاطب. کدوم موزه میتونه اهداف بیشتری داشته باشه که مخاطب بیشتری جذب کنه؟ این باعث میشه که موزه ها راهکاری رو پیدا بکنه که نتیجه اون پیدایش نسل جدید موزه هاست. اگر بپذیریم اولین موزه ها همه‌ی تمرکزشون روی محافظت از اشیاشون بود. وقتی تعداد این موزه ها زیاد شد، برای اینکه بتونن جذب مخاطب بکنن شروع کردند به توجه بیشتر به مخاطب و اگر بخوای های اول بگیم، موزه های اثر محور (object سنتر به موزه و میگیم موزه موزه‌های مخاطب محور و سنتر یا هیومن سنتر این موزه ها اومدن تو معماریشون مثلا کافه را انداختن رستوران را انداختن یا کتابخونه زدن سینمای پنج بودی زدن کاری کردن که مخاطب فقط نخواد اثر ببینه و یک حس رضایت یا ساتیسفیکشن هم بهش دست بده خب مهمترین چالش موزه ها در اواخر قرن بیستم، اواخر قرن گذشته اتفاق افتاد و اون موقعی بود که همه موزه ها دارای سینما، پتاخونه، کافه، رستوران و غیره شدن اینجا دوباره موزه ها باید یه فکری این یه ایده رو به خرج این تا کاری بکنن که مخاطباشون رو از دست ندن و این اتفاق وارد شد که نسل جدیدی از موزه به وجود بیا موزه های نسل سوم امروز همون موزه‌هایین که مردم جلویشون صف میکشند تا بهشون نگاه بکنن. این موزه ها توجهشون دیگه صرفاً به آثار نیست، فقط هم به مخاطب فکر نمیکنن. باید به کار سه‌ومی، به رویکرد سومی برسن تا بتونن توی این فضای پر از اینترتینمنت و تفریح غلبه استلیکو، همچنان مخاطبهای زیادی رو داشته باشن. قبل از اینکه نست سروم موزه ها رو بگم چی کار کرده، بذارید بگم که واقعاً موزه مؤسسه مهمیه. مثلا فرض بفرمایید در آلمان که تقریباً جمعیت شبیه ماست و حدود 88 میلیون جمعیت داره بیش از 8500 میز فعال دارن کار میکنه. ما در ایران کمتر از 500 میز گشایش یافته داریم. البته در ایران به شدت مفاصات پذیری میز در 7 سال آینده تغییر کرده. شاید باورتون نشه پارسال به طور میان این هر 14 میز با یه موجه در اداره راه اندازی شده. و این اصلا اماره عجیب و غریبیه. البته خیلی با اروپا فاصله داریم و امریکا البته مثلا در سال 1964 در امریکا هر سه روز و نیم یه موزه را شده و خبشون اونه که ما هنوز جز کشورهای کم موزه ایم. اما به شدت آمار موزه ها رو به افزایشه. تمام مؤسسات ها همه ی ها دارن موزه میزنند. فوق از این که حالا این موزه جزء کدوم نوع مهم اینجاستن، آیا هم ها موزه های نسل اولیه که فقط اثر میچینند یا موزه هایی که فضاهای تفریحی هم دارن نسل دومین، یا نسل سومیان که الان توضیح میدم یعنی چی؟ این نشون میده که اتفاقی داره میفته. شماها هم واکنشتون نسبت به پنل موزه عوض شده. شاید باورتون نشه پارسال در تهران 6 میلیون و هزار نفر رفتن سینما و 3 میلیون و هزار نفر رفتن موزه. این رغم اصلا قابل مقایسه با همین چهارپنج سال پیش نیست بنابراین اگر بقمون کنیم که ماهیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی پدیدهای به اسم موزه در حال تغییر و جابجایییه به دا به تغییر مقتصات دیده ماهد این فکر بکنیم که خب چطور میتونین موزه موفق داشته باشیم چه موزهای میتونیم داشته باشیم که مردم جلوی صف بکشند یا دوست داشته باشند او موزه رو ببینند موزه های نسل سوم ضمن توجه به آثارشون یعنی نور اوکی باشه دما بیترین رطوبت همه اینها هواسشون هست به مقاطبشنم حسابی بیزنند خوش بگذره تمام فضاهای تفریقی لازم رو پیاده میکنند اما اتفاق سوم تغییر در محتوای پدیده این موزه است موزههای نسل سوم موضوعاتی رو پیاده میکنند که هیچ رسانه دیگهای نمیتونه با این تمرکز به هش ببینید یک رو صحبت از رادیو شد، صحبت از اینترنت شد، صحبت از مگزی، مجله ها و رسانه های متعددی شد همه این رسانه ها یک تفاوتی با موزه دارند. و اون اینه که تلویزیون رو میشه سانسور کرد یعنی میشه شود در تلویزیون خبری رو پخش کرد که با واقعیت متفاوته کمان که مثلا یه اتفاقی در تهران میفته، دو تا شمکه داخلی و خارجی، دو تا ب تا چوری ویدیو که واقعیت هیچ کدوم از اینا تو اون کلی نه بشه. چیز سه با باشه. در رادیو هم همین اتفاق میفته. رادیو هم چالش های خودش رو داره و البته امکانات خودش رو. اینترنت هم همینطور. هر کسی که رسانه را میندازه سانسورینگ رو هم به رسانش پیاده میکنه. اما اینو تنها رسانه‌ایه که شما مستقیما با داده‌ها با ما اون چیزی که اتفاق افتاده چشم بهش می‌ندیدن، چه شفاهی از جزئی می‌بینیش می و بتونید می برداشت شخصی خودتون داشته باشید. این موزه فضای کام بدن دموکراتیکی دموقراتیک. هست که برداشت افراد به نصفت به, ت... به عدد تعداد واسیت ها متفاوته و درشت عددی و کیفی موزه ها داده این رو هست مشون میده به خاطر همین متفاوت بودن در اواخر قرن گذشته جامعه شناس ها به این نتیجه رسیدن که موزه بهترین موسسه و بهترین رساله است برای حل کردن چالش های انسان در قرنه امروز اگر موزه ها را میفتند کمتر موزه های تاریخی هستن. کمتر موزه هایی هستند که نمایشگاه هنری باشند. کمتر موزه هایی هستند که در اون میونه های و رو ها را رو ببینید. تقریبا از این جوانه اشباق شدیم. موزه های نسل جدید موزه های معضلات انسان هستند. به عنوان مثال ما در امریکا که می کنم در امریکا موزه ای رو داریم به اسم ف لابرز چاخ. ها خیلی چاق شدند و ها خیلی مشکل پیدا کردن برای دوست پیدا کردن، برای ازدواج کردن بنابراین موزه ای را افتاده برای ها اونجا جمع میشند دوره هم با هم آشنا میشن با هم دوست میشن انجمن تشکیل میدن راه کار خیدا می‌کنن، چجوری لاغر باشن و یک موزه اجتماعی امریکا تحت عنوان فت هیومنز اونجا برطرف میشن. اگر ما در تهران مشکل فقر داریم، اگر در تهران مشکل طلاق داریم اگر در ایران مشکل اعتیاد داریم یا مشکلاتی از این دست این نسل سوم مون موزه ها هستن که میتونن این مشکلات رو برطرف بکنند خیلی بهتر از تلویزیون، سینما یا هر رسانه دیگه ما در موزه احتیاط میتونیم نشون بدیم که علتش چیه از نزدیک کمپین تشکیل بدیم بیان کمکشون بکنیم به دانش آموزهامون خیلی چیزها رو خیلی دیتاها رو مرتبط بکنیم و این نوع مو... موزه که محصول دوران پس از مدرنیسم هست الان در دنیا به شدت در حال گسترش و ما در ایران کمتر بهش توجه کردیم پیشنهادم این هست و تلاش من به عنوان کارشناس موزه این هست که بتوانیم در موزه های داخل کشور ما یک مقدار از مسائل اجتماعی صحبت بکنیم به عنوان مثال چقدر خوبه اگر هر کسی در ایران یه چیزایی در رابطه با انرژی هستهای و بعد بمیدونه چقدرش علمیه، چقدرش سیاسیه، چقدرش بین این دوتا یر آیا سرح اقتصادی داره یا نه چقدر خوبه که یک موزهی باشه به نام موزه علوم و یک بادویای داشته باشه که در اون در رابطه با صرف تا سلح انرژی هستی ای صحبت بکنه موزیک بوده دورش ادامه ده یا مثلا فصل کنید تهران داره گصله و ممکنه که زلزله بیاد همین الان ای کاش یه گالری بود در موزه علوم یا باشه در آینده یا اصلا موزه ای باشه به نام موزه زلزله از نوع موزه های علوم که در اون ما بدونیم قبل از زلزله باید چیکار کنیم حین زلزله باید چیکار کنیم بعد از زلزله باید چیکار کنیم اینها نسل سوم میزه هستن در اینجا دیگه مفهوم راهنمای موزه اون کسی نیستش که میگه از این طرف به فرمیدیو مثلا شما رو معنی میکن از دست دادن به آثاری هر چیز دیگه وبسایت موزه، فروشگاه موزه، مهماری موزه، تمام پرسنل موزه اصلا تخصص موزه، به عنوانی، رشته میاندشتهی شکل میگیره که بتونه این نوع موزه ها رو ترسیم بکنه و ما کمتر بهش نوجه کردیم. در حال امیدوارم که بتوانیم توجه شما رو نسبت به موزه تغییر بدیم و بهتون هتون پیشنهاد که اگر به موزه میرید صرفا به آثار لازم توجه بکنیم میتوانیم سناریوهایی رو در بین آثار ببینیم که صرفا آثار رو مون به مصابح یک بهانه قرار میده به عنوان مثال اگر ایران کشوریه که به هر دلیلی متهم به تروریسم هست ما فکر میکنم با یک گالری صلح که از همین آثار همین موزه ای ایران باستان میتونه بیرون بیاد مثل سیلنجر یا منشور کوروش و آثار بسیار زیاده دیگه ای از همین دیادانهای تاریخی و موزهی استفاده میکنیم اما یک مفهوم متعالی قرن 21 کمی رو به نمایش در میاریم و این اون چیزیه که باید در موزه های ما اتفاق بیفته. ما در گالری های جدید موزه‌هامون باید چیزی رو ارائه بدیم که در دغدغه مردم. هست. اگر مردم به موزه ها نمیان، مشکل از مردم نیست، مشکل از موزه هاست. به خاطر اینکه موزه ها از تفکر مردم عقب مونده. و اگر ما وقتی در موزه ها چیزی رو ارائه بدیم که در شهروندان تهرانی، اصفهانی یا هر شهر دیگه‌ای اطعن اون موزه موزه موفقی خواهد شد. پس توجهتون چکن.